سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. در این زمان نوبت به اخبار دانمارک در هفته که گذشت میرسیم امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. رایگان شدن تردد خودرو بر روی پل مابین اودنسه و شیلند دانمارک منتفی شد. وزرای پیشنهادی دولت برای تصدی و باور نکردنی به مردم دانمارک دادن. یکی از این وعده ها رایگان شدن تردد خودرو بر روی پل مابین اودنسه و شیلند بود که خبر میرسد دولت رایگان شدن تردد را منتفی کرده است برخی کارشناسان معتقدند این پل به یکی از مهمترین منابع درآمد این کشور تبدیل شده است آموزش زنان مهاجران در دانمارک برای استفاده از دو چرخر. برنامه آموزشی مهاجران در دانمارک توجه سایر کشورهای اروپایی را نیز به خود جلب کرده است برنامهی که در آن بویژه در بر آموزش نحوه استفاده دوچرخه برای زنان مهاجر تحکید می شود. در برنامه آموزشی دانمارک آموزش زبان و فرهنگ دوچقه به زنان مهاجر ارائه می شود که در کشور خودشان زنان از آزادی چندانی برای استفاده دوچرخه برخوردار نیستند کریسمس و سال نو امسال نه چندان از نظر تعداد روزهای تعطیل در دانمارک. کریسمس و سال نوه امسال از نظر تعداد روزهای تعطیلی به بدترین صورت مصادف با روزهای تعطیلی آخر سال هفته شدن و در نتیجه نباید برخلاف سال گذشته که سال ایدئال با تا... طولانی شدن تعداد تعطیلات ممکن است به شمار می رود. امسال در انتظار تعطیلات بلندتری نباشید امسال دو روز از روزهای تحتیلی کریزمد و سال نم و با روزهای تحتیلات قرفته می باشد و در نتیجه تعطیلات بلندی نخواهیم داشت عاقبت دروگوی دادگاه دانمارک شهروند یک مهاجر را پس از 25 سال گرفت یک مرد سوری که به دروغ ادعا کرده بود که ملیتی عراقی دارد و با همین ادعا موفق به دریافت اقامت و پاسپورت دانبان شده بود نه فقط اقامت و پاسپورت خود را دست داد بلکه به پرداخت جریمه و اخراج از خاک این کشور نیز محکوم شد این مرد سوری که در سال 1991 ادعا کرده بود که ملیتی عراقی دارد و حالانکه در واقع این فرد شهروند سوریه بوده جالب اینکه این فرد پس از چند سال ازدواج و هماکنون صاحب زن و سه فرزند است این مرد مسکوب با ادعای دروغین خود موفق به کسب اقامت دائم و پاسپورت دانمارک شده بود تلاش این مرد سوری برای ایستادن در مقابل تصمیم دولت نه فقط سبب شد که دادگاه و دیوان عالی کشور شهروندی آن را پس بگیرد بلکه به آن دستور داده شده خاک این کشور را ترک کند احزاب دانمارک خواستار ممنوعیت هجاب اسلامی در بیمارستان ها شدند حزب مردم دانمارک اکنون با پیشنهاد جدیدی به پارلمان این کشور رفته این پیشنهاد ممنوعیت همه پوشش‌های مذهبی را در بیمارستان های دانمارک در نظر دارد به گفته منابع خبری این پیشنهاد در حالی ارائه می‌شود که حزب مردم دانمارک دومین حزب بزرگ این کشور است و به نظر می رسد این پیشنهاد مورد پذیرش پارلمان قرار بگیرد احصاب دانمارک خواستار ممنوعیت هجاب اسلامی در بیمارستان‌ها شده بودند تشکیل دولت جدید دانمارک با کابینه ائتلافی راسموسه نخست وزیر دانمارک روز یکشنبه گفت که با اعتراف لیبرال و حزب کار برای تشکیل دولت تازه به توافق رسیده است این توافق میتواند احتمال برگزاری انتخابات زود هنگام را با توجه روبرو بودن دولت اقلیت راسموسن با مذاکرات دشوار درباره طرح ده ساله اصلاحات مالی کاهش دهد دولت دانمارک از هنگام برگزاری انتخابات سال گذشته از حزب لیبرال تشکیش شده بود که در مجلس 179 نفری این کشور تنها 34 نماینده دارد راسموسن از حزب مردم دارما که بزرگترین حزب در میان سه حزب حامی دولت کنونی شمار می برای مشارکت در دولت تازه خود دعوت نکرده است سهم احزاب از دولت دارماک گونه است. حزب اعتراف لیبرال شش وزیر حزب محافظکار سه وزیر، حزب لیبرال دوازده وزیر. اتحادیه اروپا به دانمارک درباره حباب مسکن در شهرهای بزرگان آن هشدار داده است. در یک نامه رسمی به امضای رئیس بانک مرکزی اروپا آمده که اقتصاد دانمارک میتواند در یک سراشیبی عمدهی قرار بگیرد. گزارش شده که وام مسکن یک نفر از از هر سه نفر صاحب مسکن در دارماک بیشتر از ارزش املاک آنهاست و دهیست یک نفر از هر چهار نفر بیش از سه برابر درآمد ناخالص آنهاست بنابراین این مسائل بروز هر گونه مشکل در بازار مسکن را بر اقتصاد دارماک تاثیر منفی خواهد گذاشت سفیر کوپا در کپنهاگ اظهارات کریسیان ینسن وزیر سابق امور خارجه دانه درباره فیدر کاسترو رو نامناسب دراست است یانسن در واکنش به درگذشته فیدر کاسترو گفت وی امیدوار است که مرگ وی یک انقلاب آزادی جدید در کوبا را رقم بزند سفیر دانمارک در ایران در هاشیه بازی از فازهای پارس جنوبی با بیان اینکه که این کشور در توسعه پارس جنوبی خیره کنند از گفت تحت تأثیر تمام آنچه که شما در پارس جنوبی و فازهای مختلف انجامی دهید قرار می کرد. احتمال می روید دانمارک سرمایه گذاری هایی را در فاز و فازهای پارس جنوبی ایران انجام بده پرونده بیمارانی که حقوق کنتیلپ از کمان دریافت می بازگشایی می‌شود. می شود رسانه های دانمارکی به تازگی گزارش دادند که کمان یکی از شهرهای بزرگ دانمارک اعلام کرده که پرونده بیماران مهاجر که سالها به عنوان بیماری از کمون کمک از این اجتماعی دریافت می بررسی می شود در ادامه این گزارش اعلام شده از بین ده مهاجری که به بهانه‌های بیماری در خانه هستند، نه تن از آنها میتوانم وارد بازار کار شوند. دولت قصد دارد که قوانین کانتدیلپ یا حزینه اجتماعی خود را چنان تغییر دهد که بتواند متقاضیان پناهندگی را از همه پشت مرز به کشورهای خود بازگرداند بلیط اتوبوس و قطار شهری دارماک افسایش میابد همزمان با به آسمان رفتن اولین آتش بازی یا پس از نیمه شب قطاری از قوانین و مقررات جدید نیست در کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. قوانینی که به معنی حمایت بیشتر از حقوق شهروندان و بشارت دهنده ادامه یک زندگی اهمتر و مرفه برای ساکنین یک جامعه مردم سالن و انسان مدار است. امروز شما را به اولین قوانین جدید در مورد حمل و نقل معرفی میکنیم پارلمان دانمارک ته مسوّبه‌ای با افزایش قیمت بدید اتوبوس و مترو برای سال جدید موافقت کرد. دانسک بانک بزرگترین بانک دانمارکی 79 77 نفر را اخراج نموده و 244 نفر نیز داوطلبانه این بانک را ترک کردند. به دنبال کاهش نرخ سود بانکی دنسکپانک بانک با این اقدامات سعی در کاهش هزینه ها دارد. در ماه اکتبر این بانک به هزار نفر از کارمندان خود به خصوص در بخش بانکداری خصوصی و تجاری پیشنهاد داد به طور داوطلبانه کار خود را ترک کند دانسکه بانک قصد دارد با کاهش های سود سهام را در سال 2018 به 5.12 درصد برساند. شرکت کشتیرانی مرسیلاین بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی جهان در صدد خرید هامبورگ پرسود برآمده که حضور خود در تجارت آمریکای لاتین با سایر نقاط جهان را افزایش دهد مرسیلاین 15 درصد کل حمل و نقل دریایی جهان را به عهده دارد دانمارک به عنوان گرانترین کشور اتحادیه اروپا در سال 2016 معرفی شد اکسترا پورتیدراش در این روزنامه اسکاندیناوی در تیتر صفحه اول خود نوشت گرانترین کشور عضو اتحادیه اروپا در دانمارک می باشد در این کشور هزینه های زندگی 40 درصد بیشتر از متوسط اتحادیه اروپا به گزارش به در این گزارش کشور مالت را ارزانترین کشور اتحادیه اروپا نامیدند و افزودن در مالت مصرف کنندگان باید برای خرید کالاهای خود مورد نیاز خود به طور متوسط پنجاه درصد ارزان تر از متوسط اتحادیه اروپا پرداخت کنند سطح قیمتها برای مصرف کنندگان دانمارکی در سال 2000 در سال میلادی عادی بیست و ممیز سه درصد بیشتر از متوسط کشورهای اتحادیه اروپا بود و پس از آن فلان در رده دوم قرار می‌گیرد. با آخرین خبر طرح ویژه ترافیکی در جاده‌های دانمارک به مدت یک ماه آغاز شد پلیس دارماگ از اجرای طرح تر ویژه ترافیکی در جادهای این کشور خبر داده. این تر با توجه به تعطیلات زمستانی از امروز آغاز و تا پایان دسامبر ادامه دارد. در این طرح به منظور کنترل بیشتر ترافیک و رانندگی و برخورد با رانندگان و دوچرخه و موتورسیکلت‌های مختلف میباشد. تندرستیتون پایدار.